ژن خودخواه نوشته ریچارد داکینز پیشگفته ویراست دوم در این چند سال اخیر که ژن خودخواه منتشر شده پیام اصلی این کتاب سوی بسیاری پذیرفته شده است ولی در این امر اخیر تناقض پنهانی وجود دارد وقتی این کتاب منتشر شد چنین نبود که به عنوان یک کتاب کاملا انقلابی مورد انتقال قرار گیرد و سپس به تدریج مورد قبول واقع شود طوری که ما امروز تعجب کنیم که آن همه جار و جنجال برای چه بود؟ کاملا عکس این است. از ابتدا اظهار نظرها در مورد آن موافق و مثبت بود و کتاب بحثنگیزی به نظر نمی رسید. بعد از چند سال به عنوان کتاب جدل برانگیز معروف شد و حالا اغلب آن را یک اثر تند و افراتی می دانند. اما طی همین سالها که بیشتر به افراد افراتگرا معروف شده محتوای آن کمتر افرادی و بیشتر به باور عموم نزدیک به نظر رسیده است نظریه ژن خودخواه نظریه داروینی است که به زبان دیگر شرح داده شده است اگر داروین در غیر حیات می بود، این نزدیکی و سازگاری را بلا بلافاصله تشخیص میداد و دست کم به گمان من آن را میپسندید این نظریه در واقع پیامد منطقی باور نو است که به شکلی جدید بیان می شود. به جای آنکه بر موجود زنده تمرکز کند، از دیدی یک جن به طبیعت نگاه می کند. نگرش متفاوت است، نظریه همان است. در صفحه اول رخنمون گسترش یافته، با استفاده از مکعب نگر، موضوع را توضیح دادم. این تصویر مکعب نگرد که برای کسانی که تصویر رو قطعا نمی بینند به حالت اون پله هایی رو داره که وقت می کشند و شما نمی دونید پله رو پایین میره یا رو بالا میاد این یک طرح دو است روی کاغذ با جوهر اما تصور ما آن یک مکعب شفاف سه بعدی است اگر چند ثانیه با آن خیره شوید می بینید جهت آن رو به سمت دیگری می شود باز با آن خیره شوید دوباره اول بر می گردد. هر دو مکعب با آن داده های دوبودی که شبکیه ما را متاثر کرده سازگارند بنابراین مغز براحتی آن دو را به جای هم میگذارد هیچ کدام از آن دیگری درستتر نیست منظورم این است که به انتخاب طبیعی نیز میتوان از دو منظر متفاوت نگاه کرد از زاویه دید جن یا از ظاویه دید فرد اگر درست متوجه شویم هر دو یکی هم دو برداشت از یک حقیقتن می توان از این یا آن دید به تکامل نگریست و همچنان نو داروینی باقی ماند. حالا احساس می کنم که این تشبیه خیلی دقیق نبوده است. به جای ارائه یک نظریه یا کشف یک واقعیت تازه، اغلب مهمترین نقش یک دانشمند این است که همان نظریه یا واقعیت‌های قدیمی را به شیوه جدیدی که خود کشف کرده مطرح کند. طرح مکعب‌نگر از این بابت گمراه کننده است که در آن نتیجه هر دو شیوه دیدن به یک اندازه خوب است. البته این تشبیه تا حدی درست است. برخلاف نظریه ها، زاویه دید را نمیتوان با آزمایش اثبات و در موردش قضاوت کرد. نمیتوانیم بر زوابط آشنایی که برای تأیید یا تکذیب داریم تکیه کنیم. ولی تغییر دیدگاه در بهترین حالت خود میتواند به چیزی بالاتر از نظریه دست یابد. می راهی به سوی یک فضای فکری جدید باز کند که منشأ نظریه های جالب و آزمایش شدنی بسیاری باشد و از بسیار چیزهای به ذهن نرسیده پرده بردارد. در مکعب نگرد چنین چیزی اصلا وجود ندارد. در آن مکعب فقط پرش دید از یک حالت به حالت دیگر است به حق ارزش آن حالت ها ادا نمی شود. چیزی که مورد بحث ماست چیزی نیست که مانند پریدن. از یک زاویه دید به زاویه دیدی معادل آن باشد بلکه در شکل نهایی خود یک صورتبندی مجدد است. چه زودتر سهم ناچیز خودم را در این صورتبندی جدید اعلام می کنم. به دلیلی از این دست که بهتر است بین علم و عمومی کردن آن خط فاصل دقیقی نگذاریم. شرح و تفصیل نظرهایی که پیش از این فقط در متون فنی آمده اند، هنر آسانی نیست. ما این است که با درک و بینش از زبان تازه و استعاره های مناسب استفاده کنیم. اگر بتوانیم در مسیر استفاده از زبان و استعاره نو خوب پیش برویم، به نگرش جدیدی نسبت به مسائل می رسیم. و همانطور که کمی پیش گفتم، شیوه جدید نگرش خود نقش با ارزشی در علم دارد. ایشتن هم در رواج علم کم نقش نداشت و من اغلب فکر میکنم نتیجه استعاره های روشن او فقط این نبود که به بقیه ما کمک کند سوختی بود برای فکر خلاق خودش نگاه به داروینیسم از چشم ژن در نوشته های ای فیشر و دیگری پیشگامان نو داروینیسم در سالهای 1930 به صورت زمنی است ولی این روی کرد در دهه شست توسط ود همیلتون و ج.س ویلیامز به شکل آشکار است. برداشت آنها برای من حالتی رؤیاگونه داشت ولی بیانشان بسیار موجز و مختصر بود و شرح کافی نداشت. من احساس کردم یک شرح و بست مفصل از موضوع حیات می تواند آن را هم در ذهن هم در دل جا بیاندازد به این فکر افتادم کتابی بنویسم که تکامل را از دید ژن تحسین کند باید مثال های آن حول رفتارهای اجتماعی می بود تا می تواند نگرش ناآگاهانه طرفداران پرشمار انتخاب گروه را که در آن زمان در داروینیسم دست بالا را داشتند تصحیح کند کتاب را در سال 1972 شروع کردم زمانی که قطع برق‌های ناشی از گرفتاریهایی در صنایه در تحقیقات آزمایشگاهیم وقفه ایجاد می‌کرد آن ها متاسفانه از یک نظر بعد از نوشتن فقط دو فصل تمام شد و من ادامه برنامه را تا یک مرخصی تحقیقاتی در 1975 به تعویق انداختم در این مدت بیش از بقیه توسط جان مینارد سمیت و رابرت ریورز آن نظریه بست یافته بود. حالا احساس می کنم آن فاصله یکی از آن دوره های است میزیست که در نظریه های جدید در هوا بال بال میزنند. من ژن خودخواه را در وضعیتی شبیه به یک تب هیجانی نوشتم. وقتی دانشگاه آکسفورد برای یک ویرایش دیگر با من تماس گرفت، اصرار داشتند که بازنگری رسمی جامع و صفحه به صفحه بیمورد است. بعضی کتابها از اول شکلگیریشان معلوم است که چاپ های متوالی خواهند داشت و ژن خودخواه چنین نبود. چاپ نخوس کیفیت شاداب خود را از زمانی که در آن نوشته شد وام گرفت. در بیرون بوی انقلاب میآمد. پرتوی از روح بخش ورز ورز حیف بود که کودک آن ایام را واقعیت های روز فربه کند یا سردرگومی ها و احتیاط ها برچهره از چین بیاندازد. بنابراین متن اصلی باید با تمام معایب همونطور که هست به قوت خود باقی بماند یا داشته که در انتها آمده است تصحیحها، ها، و شرح و تفصیل ها را دربر دارد. لازم بود فهست کاملا جدیدی در باب موضوعهایی که بدی بودنشان در دوره خود حال و هوای آن سهرگاه انقلابی را همچنان تازه نگه می‌داشت اضافه شود. حاصل کار فهست 12 دوازده و سیزده بود. در مورد اینها من از دو کتاب در این زمینه که در آن سالهای وقفه بیش از همه برایم هم جالب بودند الهام گرفتم. تکامل همکاری از رابرت اکسلورد که به نظر میرسد نوعی امید به آینده در آن است و کتاب خودم راهنمون گسترش یافته که از نظر من در آن تأثیر زیادی داشت و با تمام خوب و بدش احتمالا بهترین نوشته من در تمام عمرم است. عنوان ادمهای خوب جلوهند را از یک برنامه تلویزیونی بی بی سی هورایزن که در سال 1985 در آن حضور داشتم وام گرفتم. این فیلم یک مستند پنجاه دقیقه‌ای در رویکرد روی کرده نظریه بازی ها به تکامل همکاری بود که جرمی تأثیر آن را ساخته بود. ساخت این فیلم و فیلم دیگر ساعتساز نابینا توسط همین تولید کننده در من احساس احترامی نسبت به حرفه او به وجود آورد. تولید کنندگان هورایزن بعضی برنامهاشان را اغلب با سازمانبنی جدید با عنوان نوا در آمریکا نشان می دهند. به کارشناسان خبره صاحب نظر در موضوع فیلم تبدیل می شدند. فست دوازده چیزی بیش از فقط عنوانش را به تجربه کاری نزدیک من با جرمی تایلر و گروه هورایزن مدیون است و من سپاس گذارم. اخیرا متوجه یک واقعیت ناخوشایند شدم. بعضی دانشمندان صاحب نفوز اسم خود را روی نوشته هایی می که در تهیه آن نقشی ندارند. ظاهرا بعضی دانشمندان رد بالا ادعا میکنند در پدید آوردن مقالهای همکاری دارند در حالی که تنها شراکت آنها در میز کار کمک هزینه و ویرایش نهایی آن نوشته است در آنجا که من میدانم تمام شهرت دانشمند بودنشان بر پایه کار دانشجویان و همکارانشان است نمیدانم برای مبارزه با این تقلب چه باید کرد شاید سردبیران مجله باید از هر یک از نویسنده در مورد آنچه نوشتن نوشتند گواهی امضا شده ای بخواهند ولی این یک یاداوری است علت مطرح کردن آن این است که می خواهم عکس آن را نشان دهم هلنا کرونین کوشیده است تا این کتاب را خط به کلمه به کلمه بهتر کند و باید اسمش به عنوان همکار بخشهای جدید آن آورده شود ولی خود او با این نظر مخالف است من واقعا از او ممنونم و متاسفم که سپاسگزاری فقط تا این حد است همچنین از مارک ریدلی و آلن گرافن به خاطر اظهار نظرهای سازندهشان در مورد بخشهای خاصی از کتاب متشکرم و از توماس وستر، هیلاری مکلین و دوستان دیگر در انتشارات دانشگاه آکسفورد که سر به هوایی ها و دیریا کردن های مرا را تعمل کردند. داکینز 1989 پیش گفتار چاپ یکم از نظر یک تکاملگی هیچ میاری وجود ندارد که بر اساس آن یک گونه نسبت به گونه دیگر برتر باشد. مارمولک و قارچ با فرایندی به نام انتخاب طبیعی طی حدود سه میلیارد سال پیدا شده است. درون هر گونه، از بعضی افراد زاده های بیشتری باقی می ماند. نسبت به بعضی دیگر طوری که ویژگی قابل انتقال جنهای آنهایی که از نظر تولید مثل موفقند در نسل بعد بیشتر می شود. انتخاب طبیعی عبارت است از تفاوت غیراتفاقی تولید مثل جنها ما با انتخاب طبیعی شکل گرفته ایم و اگر بخواهیم از وجود خود سر درآوریم باید انتخاب طبیعی را درک کنیم گرچه در نظریه تکامل داروین انتخاب طبیعی آن اساس مطالعه رفتار اجتماعی است مخصوصاً نگامی که با که مندل همراه شود ولی تا کنون چندان مدنظر نظر واقع نشده است همه ی که صرف بررسی علوم اجتماعی شده چارچوبی ساخته است که دیدگاه روانی و اجتماعی پیش داروینی و پیش را پیش رو قرار می‌دهد. حتی درون خود زیزشناسی هم. قفلت و سوء برداشت از نظریه داروین آور است دلیل این امر هرچه باشد به شواهد رو به پایان است کار بزرگ داروین و مندل را شمار رو به افزایشی از انسانها پی گرفتند که سرشناسترین آنها آفیشر فیشر و هاملتون همیلتون جیس ویلیامز و جی مینارد سمیتاند اکنون برای نخستین بار پیکره اصلی این نظریه اجتماعی که بر انتخاب طبیعی است به شکل قابل درک و شیوا توسط ریچارد داکینز ارائه شده است. داکینز تک تک درون مایه های اصلی این نظریه جدید اجتماعی را میپروراند. مفاهیم رفتاری ایثارگرانه و خودخواهانه نظریه خیشاوندی از جمله روابط مادر و فرزند و تکامل حشرات اجتماعی، نظریه نسبت به دو جنس، ایثارگری دوجانبه، تقلّب و انتخاب طبیعی تفاوت جنسی با اعتماد به نفسی که حاصل تسلط به نظریه زیربنایی است، در با دقت و شیوه قابل تحسینی از این کار جدید پرده برمی‌دارد. او با مطالعه وسیع در زیستشناسی، قنا و گیرایی کلامش را به خواننده می‌چشاند. آنجا که با کارهای قبلا منتشر شده اختلاف نظر دارد مثلا وقتی از تصور نابروس خود من انتقاد می کند دقیقا به هدف میزند. داکینز همچنین با ظرافت تمام منطق استدالهایش را شرح میدهد طوری که خاننده با استفاده از آن منطق می بحث را گسترش دهد و از خود داکینز پیش بیفتد. این بحثات در جهات مختلف ادامه می آبند. برای مثال اگر طبق استدلال داکینز در ارتباط بین حیوانات تقلب یک اصل بنیادی باشد پس باید برای تشخیص آن از میان چیزهای دیگر انتخاب پرقدرتی وجود داشته باشد و این انتخاب به نوبه خود باید درجه‌ای از خودفریبی را برگزیند طوری بعضی حقایق و انگیزه های ناآگاه توسط نشانه های ظریف خداگاهی سرکوب نشوند بنابراین این دیدگاه متداول که انتخاب طبیعی آن دستگاه عصبی را انتخاب می کند که تصاویری هرچه دقیق از جهان به دست دهد، باید دیدگاه سوستی نسبت به تکامل ذهن باشد. پیشرفت های اخیر در نظریه اجتماعی به قدر کافی قوی بودند که در فعالیت های مخالف تکامل آشفتگی های مختصری را سبب شوند برای مثال، آنها ادعا کردند که این پیشرفت اخیر در واقع بخشی از یک دسیسه دورهی است و با غیر ممکن کردن این پیشرفت ها از نظر ژنی میخواهند مانع مان از پیشرفت اجتماع شوند فکرهای سست به هم گره خورده و این تصور را به وجود آوردند که نظریه اجتماعی داروین از جنبه مفهوم سیاسی واپس است این از حقیقت دور است برای نخستین بار فیشر و همیلتون برابری دو جنس را از نظر ژنی ثابت کردند. نظریه و داده‌های کمی در مورد حشرات اجتماعی نشان می‌دهد که در والدین هیچ تمایل ذاتی برای حاکمیت بر زادگانشان یا عکس آن وجود ندارد و مفاهیم سرمایه‌گذاری والدین و قدرت انتخاب ماده مبنای یک دیدگاه بیطرفانه و عینی برای نگرش به تفاوت جنسی است که در مقایسه با تلاش های پسندی که ریشه قدرت و اختیار زنان را در با بیعملکرد بیعمل کرد جنسی می‌داند پیشرفت قابل توجهی است مختصر اینکه که نظریه اجتماعی داروینی به ما ای از یک تقارن و منطق زیربنایی در روابط اجتماعی را نشان میدهد که وقتی خوب درک شود هم به بینش سیاسی من توانه تازهی می‌بخشد و هم یک تکیگاه فکری برای علم و جادوی روانشناسی می شود. در این جریان به ما نیز درک امیقتری از ریشه های مختلف رنج های من خواهد داد رابرت ال دانشگاه هاروارد جوییه 1976 مقدمه مؤلف بر چاپ نخست این کتاب را باید تقریبا مثل یک داستان علمی تخیلی خوان. طوری تریزی شده که با قوه تخیل ما سازگار باشد ولی افسانی علمی نیست علم است از نظر من عبارت عجیب تر از افسانه تا حتی قالبی ولی درست همان چیزی است که در مورد واقعیت صدق میکند ما ماشینهای بقا هستیم محملهای متحرک که به طور تصادفی برای حفظ ملکول های خودخواهی به نام ژن برنامه‌ریزی شده ایم این واقعیت هنوز مرا شگفت زده میکند گرچه سالهاست با آن سر و کار دارم ولی انگار هرگز برایم عادی نمیشود یکی از آرزوهایم این است که بتوانم در دیگران هم این احساس شگفتی را بیدار کنم. وقتی این کتاب را می نوشتم، احساس می کردم سه خواننده فرزی از پشت شانه ناظر کار من هستم. و حالا من کتاب را با آنها پیشکش می کنم. اول یک خواننده عادی فردی غیر به خاطر او من تقریبا به کلی از سبک و سیاق فنی اجتناب کردم، و جایی که لازم بود، واجه های تخصصی به کار برم، آنها را تعریف کردم. حالا تعجب میکنم چرا از اکثر آن واجه های تخصصی در های تخصصی کوتاه نمیاییم؟ فرض من این بود که آن فرد معمولی هیچ دانش ویژه ای ندارد، ولی فرض این نبود که کنن باشد. همه میتوانند علم را عمومی کنند، در صورتی که بسیار ساده اش کنند. من خیلی زحمت کشیدم تا بعضی نظرهای پیچیده و ظریف را به زبان غیر ریاضی شرح دهم بدون اینکه از جوهرشان کاسته شود. نمیدونم تا چه در این کار و در خواسته دیگرم موفق شده باشم در اینکه این کتاب آنطوری که شایسته موضوع مورد بحث آن است، جالب و گیرا باشد. همیشه این احساس را داشتم که زیست را باید چون داستانی اسرارآمیز در نظر گرفت. چون به واقع شناختن زندگی ماجرای اسرارا است. جرأت من بیش از این نیست که آرزو کنم از آن شوق و شوری که این موضوع برای همه عرضه دارد بخش بسیار کوچکی را انتقال دهم دوبامی خواننده خیالی من یک کارشناس بود او یک منتقد سریح و لحجه به محض دیدن بعضی قیاس ها و استعاره ها در هم می کشید تکی کلام های مورد علاقه او استسناویه ولی از جهتی و وای بود تمام مدت حواسم به او بود و حتی از ترس او گاهی تمام یک فصل را دوباره از اول طوری می نوشتم که او بپسندد اما در آخر باز به روش خودم برمیگشتم آن کارشناس هم از کار من چندان راضی نیست با این حال، واقعا امیدوارم برای او هم در این کتاب چیز تازه یافت شود. مثلا شیوه جدیدی برای نگاه کردم به مفاهیم آشنا یا انگیزشی برای افکار جدید خودش. اگر اینها توقع زیادی است، لاغل میتوانم آرزو کنم این کتاب در قطار سرش را گرم کند، خوانندگی سومی که در نظر داشتم دانشجو بود فردی بین یک شخص معمولی و یک متخصص اگر چنین کسی هنوز تصمیم قطعی نگرفته که در کدام رشته تخصص بگیرد امیدوارم بتوانم علاقمندش کنم برشته فن جانورشناسی سری بزند برای مطالعه جانورشناسی غیر از سودمندی احتمالی این رشته و کلا دوست داشتنی بودن جانوران دلیل بهتری وجود دارد آن دلیل این است که ما جانوران پیچیدهترین و خوشساختترین دستگاهی هستیم که در تمام جهان شناخته شده میتوان یافت با توجه به این نمیدانم چرا بعضی دنبال مطالعه چیزهای دیگر میروند امیدوارم این کتاب برای دانشجویی که از قبل مسمم بوده جانورشناسی بخواند چیز با ارزشی، از نظر آموزشی داشته باشد او باید مقاله های پایه و کتاب های فندی را که زیر بنای کتاب من است مطالعه کند. اگر برایش هضم آن منابع اصلی سخت باشد، شاید این شرح و تفسیر غیر ریاضی من به عنوان یک مقدمه یا زمیمه به دردش بخورد. معلوم است که از نظر سه خاننده مختلف مطلوب بودن کار بی خطره نیست فقط می این را بگویم که در تمام این مدت حواسم به این خطرها بود ولی فکر می کنم فایده این تلاش به زحمتش می من رفتارشناس هستم و این کتاب درباره رفتار حیوانات است. بدون شک مدیون آن سنت رفتارشناسی هستم که دارم پرورش یافتم و به ویژن نکوتینبرگن که نمی‌داند در آن دوازده سالی که زیر نظرش در آکسفورد کار کردم چه تأثیر پردامنه ای بر من گذاشت عبارت ماشین بقا را شاید عینا خود او نگفته باشد ولی از اوست اما اخیرا یک رشته نظرهای تازه از منابعی که رسماً رفتارشناسی محسوب نمیشوند رفتارشناسی را زیر و رو کردند. مبلغ این کتاب تا حد زیادی همان نظرهای جدید است. از بانیان آنها به موقع در جاهای مختلف کتاب قدردانی شده است. چهرهای شاخصی چون جی سی ویلیامز، جی مینارد سمیت و دی همیلتون و ر لی تریورز. افراد مختلف برای عنوان این کتاب پیشنهاد هایی داشتند و من با تشکر از آنها در عنوان فرست ها از پیشنهاد آنها استفاده کردم. مارپیچ همیشه زنده، جان کربس، ماشین ژن، دزمون موریس، چیستی ژن، تیم کلاتون، بروک و جین داکینز جدا جدا عذرخواهی از استیفن پاتر. شاید خواننده فرزی برای آرزوها و انگیزه های ما نقش هدف را داشته باشند ولی نقش واقعی خوانندگان حقیقی و نق... نویس ها را ندارم. من به بازدگری عادت دارم و ماریان داکینز مدام در حال انجام پیشنویس و پاکنویس بیشمار بوده است. دانش قابل ملاحظه او در شناسی توانایش در درک مسائل نظری همراه با دلگرم کردنها و حمایتهای روحیش همیشه به دادم رسیده است. جان گربس هم پیشنویس تمام این کتاب را خواند. او بیشتر از من از مطالب کتاب خبر دارد و در بیان توصیه و پیشنهادهایش هایش و سخاوتمند است. گلینز تامسون و والتر بودمر از ادامه موضوعات مربوط به جن با لحن ملایم ولی به طور جدی انتقاد کردند. می‌ترسم بازنگری من هنوز نظر آنها را برآورده نکرده باشد اما امیدوارم تا حدی بهتر شده باشد. به خاطر وقتی که گذاشتن و به خاطر شکی خیلی تشکر میکنم. جندکین ششتانگ عواسش به واجه پردازی های گمراه کننده بود و برای جمعبندی ها و جا جایی دوباره کلمات پیشنهاد های بسیار خوبی داد. کسی مناسبتر از ماکسفل استپ را به عنوان آدم عادی هوشمند نمیتوانستم در نظر بگیرم. او با دقت تمام متوجه یک اشتباه کلی و مهم در سبک نسخه اولیه شد که نتیجه آن در نسخه نهایی بسیار تأثیرگذار بود. کسان دیگری که در مورد بخشهایی مختلف انتقادهای سازنده داشتند یا نظر کارشناسی دقیقی ابراز کردند عبارتند از جان مینارد سمیت، دزمون موریس، تام ماشلر، نیک بلرتون جونز، سارا نیک هامفری، تیم کلوتون بروک لویس جانسون کریستوفر گراهام جوف پارکر و رابرت تریورس پاتسرل و استفانی برهوبن هم خیلی خوب تایپ کردند و هم این جریان را چنان با علاقه انجام دادند که مرا هم به شوق آوردند سرانجام باید از مایکل راجرز در انتشارات دانشگاه آکسفورد تشکر کنم زیرا علاوه بر آنکه ایراد بنوشته هم گرفت خیلی بیش از آنچه وظیفه محسوب شود به همه جنبههای تولید این کتاب توجه نشان داد ریچارد اکینز 1976